بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين وعلى الله طيبين <تصفيق> <تصفيق> طاهر الله بحثي در اینجا بود را در مقدمات هشمت به اینجا مونتقی شد که در طبالی مقدمه اول و دومه اجمال هم که در ما آقایان باش مقدر نماشه توضیحاتی تا انتظاره شد از کنم بزرگتون که تا اینجا اون ممنای اول رو ما به اسطلاح بربسید چندیم ممنای کسانی که دنبال کشف واقع و به دیگری بیان تمام مراد واقعی هستن و به این منحوش وجه ضرور رو منشه شد طریقیت مراد واقعی متکلم می یعنی ما دنبال چیزی هستیم که کاشف از مراد متکلم باشه و اگر در مقام بیان باشه اطلاق کاشف از نمی سه تمام مراد همینه اما اگر در مقام بیان نباشه اطلاق کاشف از این نیست و این مطلب پسکر در این محنا درست هم هست اجمالا این محنای دیگه هم که خواهیم بخواهیم این درسته و بعد, بعد توضیح بیشتری خواهیم محنای این است که ما به دنبال کشف مراد روز کلم نیستیم به دنبال حجت هستیم حجت اینه جه اینمانه این حجت آقیان حالا کشف این که تمام مراد واقعی هست یا نیست ما اون برای کش به ما نیست، این تاریخ به مراد واقعی و تمام مراد واقعی است. ما به دنبال چی هست؟ که حجه. و مراد از حجه در این اصطلاح، اون حجه در اصطلاح اصولی و در اصطلاح منطقی یا غیر است مراد از حجه یک اصطلاحی است که در مباحث ادعای قانونی در مجال قانون استفاده وجود دارد. و اون مایه هفت یه بیگه آمر بر منمور و منمور بر آمر مایه اصلاح و در چرا این کاری کردیم یه خوشما اینطور بود چرا آب گرم یک موزیم برو آب بیار قید نداری که آب سر بختم برو آب بیار برداشت آب سرد بود بسیدش که آب سر بودیم خوشما بودی آب بیار آب شما برد سر پس مراده از غجت اون حد وسط در اصطلاح منطقی ها یا طریق یا موسیل یا از یه حقا مراد نیست مراده از غجت در این اصطلاح مایست لحظه احتجار بیکیم اونم طرف این از اون که اعتبار کرده و از اون که اعتبار برگو شده این مایست لحظه احتجار بر اصطلاحا غجت بیه و این یک اصطلاح به اصطلاح قانونیه در معادل حجت, حجت در اصطلاح لغوی که معنی غلبه است در معادل حجت در اصطلاح فلسفه منطق یا حجت معنی طریق و موصل یک واقعی یک یک حجت یک حجت به این معنیه که یا حجت در اصول و در موارد قانونی به معنای مصدر تشریع اطلاق میشه مثلا آیه اجماع جزء مصادر تشریع هست یا نه پس حجت اطلاقاتی داره باز اشتباه نشه ماشای اشتباه پیش نیاد مراد ما از بحث افلاق و حجیت افلاق در حیثت ما یه افلاق و لیه احتجاج به لفت و هلیه نسبت به هم بیره احتباط من, من گفتم بودم آب بیار و این آب مثلا افلاق داره مثلا این گفتو آب نیمونی دیگه آب سرد نبود شما گفتو آب, آب سرد بیارم من خواهد آب سرد بیارم من نبیدون آب سرد آب بیارم هر آب گرمه و این س مراد از حجت اینه یعنی ما یسله لیل احتجاج به ما به دنبال طریق و موسی و کاشه و مرآ از مراد واقعی روزه کلیبی ما روزه این بار حجتیم خب بله اونم درست اون اگر قرینه باشه که موجب به بشه بله در این منحای حجیب خالی نخالی خواهن سیاهی و حالی هم نقش دارد حصولا من کنازم ارز کردن دلالت یک کنگه بر مطلب برای اونه که مراده گایی موقات مثلا در 15 در درستر 20 درصدش به چهانه به برمیگرده برمیاده به احتقاظات و سیاق و شواهد و خصوصیاتی که حاکمه برمیاده که بیده نمیشه یعنی ملخوز نیست مضمون نیست. یه یعنی امور اکتاثی در کلام وجود داره. لذا همیشه صحنه معنا با یک مراجعه به کتاب لغت حل نمیشه. اینطور نیست موعظهات که کتاب لغت مراجعه بکنید این معنی این کلمه این است، معنی این کلمه این است، پس ما در نه این نیست. اینطور نمیشه پس بنابراین اگر این شد البته این هست که بنابراین حجت در مقامات هر میکنه یعنی تو مسئله اعتراض اگه در اونه اساسی باشه غالبا اخلاقاتش رو درو تمسک نمیکره اگه لغوی در اونه اساسی باشه نمیکره اگه در چشم انداز باشه با قابلیت تمسک نیست اگه در با این توضیح وقتی با اون... در این جهت هم که تو جدیه برقرار تو این جهت برقرار چه این جهت که باید به اصطلاح این فرایند سیاسی و خارجی رو ملاحظه کرد چون در اونجا هم میگفت مقضد یعنی قوم متکلیتی با یک قرینه خالیست یا یک قرینه سیاهیست که مراد متکلیت رو روشن کن اینجا هم همونطوره فهم نمکنه قرینه خالی و است که حجیت رو تکمیل میکنه یعنی حجت شدنش ممنید بلی اینکه اون مقام تشکیز داده روشه هستانا و و ما چون بیشتر دنبال این مسئله هستیم خیلی روشنه که این به تبع به تبعی مقاصد عمل یه دفعه کلامی که جنبۀ قراردیت یا یه کلامی که جنبۀ انشاییه در قانونی هست که به اصطلاح جنبه قانون اساسی داره یه به خواندن یک جنبه در جوی که جنبه قانونی خاص داره ماده قانونی خاصه هر موردی است خودش به و خود جیت تابع همون موره تابع همون موره صاحب میشه ما و نظام عرض کردیم بنابراین این ما به دنبال مواردیان بی اصطلاح کینه ها گفتن نباید باشیم ما باز به دنبال این باشیم که آیا این قوانین چجوری تفسیر بشه مثلا در بحث مفهوم شعر عرض شد که خود جمله شهدیه به لغت این دلالت بر تعلیق و دلالت بر لزوم یعنی تلازم ما بین این دوتا خود این اصلا گفت این جای که زیرون فرکن اگر زیر آمد اگر مهمان آمد نان بخرد هم نان کریدن معلق شده بر آمد مهمان که اسمش تعلیره یعنی به عبارت دیگر چیز نیست هرز نیست تعلیق برگونه شده که توضیحات شده همین این تعلیق به نحوه لزومه یعنی مثل قضیه اتفاقیه نیست و امکانه الکه ما بناهرم و انسان ناکنه نه، قدیل قضایی تصادفی نیست این ناکدیدن مترکت میشه در آمدن مهمان به نحوه لزوم یعنی از او جزا نمیشه اما این آیا این لزوم به این نحوه از که این نهمه آمدن علت یا معلوله چون ما در زبان تعلیق رو و به درزور بخار میبریم همگاهی مکلوم و اداف شرس و علت قرار میدیم گاهی هم معلول قرار میدیم ولی ازا باید با شواهر تنبید با قراره علمی اصلا اگر نرد شما تنبیدن مریض هستیم خبی ممکن است علت تنبید تقدشان علت سرعت نزع ممکن است که سرعت نزع علت تبدار باشد تبدار بودن باشه اما این که مطلوب و برداشت شد علت هر چند این رو در قضای قانوانی ما در میاریم که اسمش رو در آن وقت مقدمات ایثبات این رو در قضای قانوانی چرا چون در بین قضای قانوانی وقتی اسباب باشه اخبار چون صحبت از یک واقعه و واقع محفوظان علا واقعیت چه شما مقدم بیاریم چه مؤخر بیاریم فقط شما تلازم بینشون رو اثبات میکنیم اما کدوم علته کدوم معلوم تا واقع تابع علم تا فیزیک شیمی، که هر که هست تابع واقع خودشه اما توی اعتبارات که در اعتبارات چون واقعی نیست قیام اندر که واقعی نیست همین که شما ابراز کرده میشه واقعه میشه واقعه قانون تا گفتینه اگر مهمان آمد نان بخر این درس این کلام رو از یک کسی که اعتبار درسش هست ساده بشه میگن آمدن مهمان علب نانفریدن اون که در واقع در واقع همون توی که تناسیر درشون نباشه اما توی مقام جمعه اعتبار اینطور خب اندیریت هم اصفاد شد انحصار چی؟ بغلاقه میان باید علت منحسده باشه تا محلوم ثابت باشد انحصار از که این هم به قوانین فرار باده این نکته مثلا اگر پدر و بودر چشبه اگر مهمان نان بخرد خب ممکنه ولاخره الان آمزن مهمان علت نان خیزن هست اما ممکن است علل دیگه پیدا بشه. مثلا اگر نانوالی ها یک روز قرد نام اینجه قرد نام اگر روز جمعه شد نام بخن خودش همین ورود در روز جمعه منشه باشه میشه اداد دیگه هست ما الیت و اثبات میکنی اما اگر همین تقریب تو قانون مدنی بیان مخصوصا توی قوانین شرعی بیان که حلال رسول الله حلال و رایگه به حرام و حرام آن رو اگر این در یک قانون در یک روایت آمد در یک بیز شرعی آمد که اگر این طور شد این طور رو ما به قدیه این که این قانون دیگه بسته شده بعد از پیغم برکر دیگه چیز بر نمیداره چه هل بر نمیداره از او استفاده ادویت ما نحسره بکنیم و شاید این به معنای مقام بیان این مقام بیان بین معنی هست یعنی به روایت دیگر ما شیدید نام ب بیان ذهنی یعنی همین اعتبار قانونی اگر از دیگه انسان سادر بشه یک جور ازش ازتظاهر میکنی همین اعتبار قانونی اگر از قانون اساسی سادر بشه یک جور ازتظاهر میکنی از قانون مدنی از رو پس این مطلبی که آنوردن با متکلم در مقام بیان باشه این روشن نیست این چیز داره یعنی به اصطلاح معروف ما به اضاع داره مثلا اگر الان چیزی به نام نسخه خودش تنبل‌های چشم انداز داشته باشه این تنبل چشم اندازه اصلا قابل تمسل به اطلاقش نیست چون شخص چشم انداز مثلا ما بعد در طی 20 دیگه، به یک درجه قوی از البی از برس این هیچ چیز نداره که باید چه کارواد بکنی 40 رو بخون بدی شی مثلا شب دانشجو با درس بکنی چند تا کتاب با هیچ چیز نداره اینجور اینجور اعتبارا هیچ چیز جواب نداره اول ام ما آمدند انگار این اعتبار دسته شکمندار دارن، باور نحسوسی دارن، باور نکردن دارن شعارهای سیاسی دارن. پسوند چاچوی مثل استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. این کلمه استقلال یا آزادی اول که می‌رسه که اخلاقشی نیست. بگیم این معنا هر کسی آزاده هر کار بکنه کنه، هر کسی هر لباسی بپوشه هر کسی آزاده چرا خود این استقلال آزادی؟ اصلا این آزادی در اینجا اخلاق نداره. اصولا تو این معانی این مقام مقامی حالا این اسم مقام روهای روشن بیان مقام بیان الان بیشتر در جنبه‌های قانونی نامگذاری داره مثلا قانون اساسی اینجوریه سند چشم انداز اینجوریه شعار سیاسی مثلا عنوان نظام اینجوریه قانون مدنی یکی چی عنوان داره به اون عنوان کلیه در مقام بیان بوده روش طوره روشن شده البته یک بحث اساسی تر هست این که اساس بحث اون که اساسی کرد، اون بحث این است که آیا قرآن هست قبیل قامونه اساسی یا او نه اون چه که ما الان از اهل سنت احساس میکنیم و در کلمات و ما هم به خاطر مخالفت با اخباری ها زادیانش اینه که به اطلاعات کتابی احساسی به عمومات کتابی عرض می کنن یعنی قرآن کریم رو با امانی که از مسابر تشریفی می دونن در این جهب دسته سنت دهیم فرقی به این اوفو بلعود با المؤمنون دشروته نمی کنه اوفو بلعود هم جمعه المؤمنون دشروته هم جمعه اون هم عمومه این هم عمومه اون هم عموم و قانونیز بهشتم اصلاف به اینطور من بارده شد این هم عموم و قانونیز بهشتم اصلاف پس در حقیقت اینه اصل بحث که بین اولمايه اهل شنهت و عدهی از علمای ما و حتی در واقع ما به نظرم که روایاتی که اخباری ها تمسک کردم برای اعدام حجیت زواهر کتاب در حقیقت متن اصلی و اخباری مطلب رو در ما ما معتقد خودان متعمدان که این معلی السلام نظرشون این بوده ما در شریعت مقدسه و قرآن اساس تشریع و مبین هم حسابه دسام عربی مبین لیکن قرآن باید در ضمن سنت نعنابی شد نباید قرآن رو جدای از سنت نباید به احضیه به اطلاقش تمسطلح بکنیم بیارون صدوت رو کرد مقصده رو کرد رو کرد میامون ولید به صدات مصطلح کنون چهار تا همون رو جایی دو تا برد بشن چهار تا همون میگونه از هر حال هم بکنیم بیشتر بکنیم این عقلی مصطلات بگیم شب هرگر خواستی به خودی زور هرگر خواستی کنه هم نه عقلی مصطلات رو باید در زمن سنت پیغمبر ملاحظه کرد. شخص رو بودی و هکم رو در زمن سنت پیغمبر باید معنا کرد. وقت ما معتمریم از اون رباری هایی که اخباری ها آبادر اونا گفتن زواده به کتاب و جدی این رو برداریم اینجوری بکنیم تقیم مطالب نصوص کتاب به منزله قانون اساسیه. مثلا اونها اون اصولی توی قرآن هست، اساسی تو عقایدام باشه. یک کلیات عقاید اونها در قرآن آمد. یه الی کاری های هست، اونها در روایات شارطه شده. یک کلیات خیاماته، اونها توی قرآن اومده. یک خصوصیات، که مثلا زيارات 50 موقع انسان داره، 50 داره، هر یک سوال. این توی قرآن من. باید نیست که اصولا نظر این بوده که قرآن کریم به عنوان قانون اساسی در همایش اون زندگی باشه خب دقت این روز اصطلاح قانون اساسی فقط تو بحث قانون‌گذاریه یعنی بعد از انقلاب کبیر طنصر حدود 2 قرن و خورده قرن سال قبل قانون اساسی رو که تدوین کردن چون من اگه از قبل ما الان بلاخره زمان قانونی بیش از 4000 ساله که قانون داره این قانون حمورابی تندای 30 تا قوانینی که در یمن که فعلا از قدیم ترین قانونی که بشر از کرده اینه حالا تصور مشو که قانون حمورابی که مسئله به شاپ شده مسئله فضا خوردگی ماده شدن موجود شده ذهنا در هر حفظه قرار شده باشه لكن تاریخی چیزی پیدا کردن که از اون هم یک چند صد سال قدیم که فعلا اولین قانون رسمی دنیا که نوشته شده اونه حالا اگر درست سخنی که باشن منم اشتباه نکردم. باکی اونها من چند بار توضیح دادن قانون هنورایی مثل ماده قانونیه. اصلا بعدیش مثل استفساره. چون من نگاه کردم مثلا اگر کسی یه گاوی خرید بعد این گاو رو مثلا مدتی شیر داد بعد شی می کرد علف می‌خورد بعد فلان کرد بعد خاص یه دیگه‌رو بعد, بعد مالک اول خیلی جنب های استفتایی داره اصلا. اما اینکه به عنوان قانون اساسی باشه اون چیزی که من تو ذهنمه حدود 200 خورده سال پیش بعد از انقلاب کبیر فرانسه مساله بحث قانون اساسی پیش و در ها هم کشورهایی که کشو که انجام دادن ادعای جدی هم ندارن وجود قانون تجارت هنوز قانون اساسی نداره خیلی از کشورها هنوز قانون اساسی ندارن مدعلن نگردن واسه یعنی میگیم که در حقیقت قبل از این تاریخ این در حقیقت در قران بود مثلا و انتعاد سرخان فستت کار رو به آله و مثلا و و آیه که در باب شیر دادن زن ها این آیه ناظر به این نقطه است که میخواد فقط این رو ببین شیر دادن یک امر واجبی بر زن نیست زن میتونه در مقابل شیر دادن این فقط, این فقط هم این حالا خصوصی هست شوهر بی پول باشه کمپول چون مثلا یه پتواهی هستی که شوهر واقعا پول نداره شیرودن بر زن واجبه بحثی داره که نفقه اولاد خب بر پدر و مادر و بر خصوص پدر مادر برقیه اما چون که نفقه بر, بر پدر مادرش واجبه نفقه پدر مادر هم بر اولاد واجبه فرق نکن در هر دو اینها شرطشون فرقه اگر نداشتید حالا اگر خرز کردیم پدر فغیر از پولی نداره زن هم همونطوری که پدر پولی نداره اما زن شیر داره این رو این تصویر مطرح شده که زن یه جباره ما که طرزه مجانه خب ظاهر آیه اون بار ظاهر آیه که زن اگر شیر دار پولی شده دید این پول میخواد خب سوال آیت این فرع میشه بگیم که اون ظاهره اخلاق تمسک بکنید بگیم نفر پول نمیشه پول باید داده بشه ولو که مردن تغییر باشه خب اگه مرد تغییر باشه امکانات انفاق امخان نذاشته باشه زن به لحاظ شیر دادن غنیه حالا به لحاظ دیگه فقیر ممکنه باشه اما شیر داره نفقه بچه فقیر هم بر پدر یا مادر واجبه بر پدر یا مادر این از باتونم به این صورت یادن نمید تو فرمه مایده باشه در حلی سنده دیدن یادن نمید فعلا یادن نمید یادن نمید فعلا یادن نمید دقیق بکن آیا ما میتونیم به اطلاق آیه همه ساخت بکنیم این تصور اینه که نه آیه اطلاق نداره آیه فقط ناظر یک نقطه زن حق داره در مقابل ارزاق بودیم دقیق بکنیم آیه فقط ناظر اینه این زن برای بچه مجانی نیست اما خصوصیاتی که لازم میاد موارده کرد اینا از این نظر نداره اینا باید به با صورت بشه اصلا دقت نمیشه والله یعنی این یک بار ولادار این جنبه قوانی اساسی داره به این معنوقه خب حالا اگر متمسک کردن به اطلاع آمان باید, باید یک نهریا بیم خصوص اون آیات داره یا باز مثلا بگیم که یک نهر تمثل بوده که جاری بوده بین مسلمونها، یا باید باید, باید بشیم یک مقدار از اسلام میشو بهش تمثل کرد مثلا احضرالله هرده اونی که به یه ارفید میشو بهش تمثل کرد اونی که به یه ارفید بعدی این نهر بعد در افتی در ارفی بودنش گیره اونها نده اما اگر در یک مطلبی به لحاظ شرعی شرک کردیم مثلا بچه 13 ساله رشد و عقل و تمیز و همه جازش خور مخواد بایدون نون بخرد یه مشکل نداره که میره یه تومن پویل میده ها بکرم چون شن سی ست سی ست این بچه طبق آیه مبارکه اهلالالا بگذیم درسته اگر درش شبهه هست به لحاظ رفع قرمان صدیه درست میکنم ممکن است عیمه علیه در این جور موازه یعنی مثلا موازه ای که هم از تو که به ظاهر آیه قابلن چون یه مقدار که آیه دلاله از داری که اونجای بحث نیست که این نیست که فاقد معنا باشه لغض و مهم نیست اما بحث این است که اگر قیوز زاید بر فهم عرفی بود اون محلش حالا یه مثال رو با هم مثالی که بیروز و آیا خویان دو مرد رو ذکر کردن ببینید در آیه بودن که فکرون ما امسکنه علیکم از اون حیوانی که سگهای شکاری برای شما نگه داشتن بکنیم خب اگر ما برگرمید این این اف وجود داشته که افراد انسان برای وصول به گوش دادای از حیوانات شکاری استفاده میکنیم و رفت به اسلام نداشته دو قبل از اسلام بوده بعد اسلام بوده حالا یا شکاری شکرنده بوده؟ مثل باز و چاین چا, چیزا یا حیوانات بوده که مشروع اینشون سگه البته با چیزای دیگر مثلا یوز پلنگ رو برزه تربیهت میکردن برزه خود به اصطلاح پلنگ رو که این مدفق داریم که اگه کسی پلنگ رو تربیهتر داره برای ها آیا شخار پلنگ هم حکم شکاره سگ رو داره یا باز خصوص سگ باشه یه و این رو هم ما میدونیم عرف تحمیم داره مثلا حسنی که سگی دو بیارون زدیگی میپنند سگیشون مثلا خوش تطره میدونه خرگوش داره شما یه مثلا میخورن دیگه ولی اینا نفرستدن آیه مبارکه میاد از این لحاظ تایید میزنه میگه ما همسک علیکم. علیکم اگر خود حیمان رفته یه چیزی رو عورد شما نفر میازون کلوب ما هیوان رفته چه انتسابا در روی شما راست انجام خورده در این صورت خورده میشه یعنی تکیه واقع شده خب این یکی این پس آیه یک مقدار از سهم اورفی رو تذیه کرد این اشغال این مبلول آیاتی این در بحث که با آیه اشغال نداره یعنی بگیم آیه مبارکه اون حیوان رو کشید خودش راستش شکار کرده آورده میگه نخوریم این نیست میگیم دیگه تمثال بشه ببینیم مردم خویی یا مرموم صاحب جواهر آمده به اطلاق آیه تمسک میکنیم به لحاظ این سگ از کجای حیمان رو گرفته ده. اما به اطلاق آیه تمسک در فهارم نجم کنیم این یک کمی من به نظر اینها رو ارتکازات فقیهیشون خیلی قشن مطلب رو فرمیدن اختلاف سر چه جهده سر تغییری و تحلیل این ارتکازه. مثلا آیاتوی فرمان آیه به اون لحاظ اول نظر داره که هر جایی باشه اسلام داره در مقام بیان. اما به لاهذا تعارض نشون در مقام بیان. خب این مقدار شبیه چیزیه یعنی مصادره محدود، اون که این نهون که خود محدود شده محدود بودن تکرار کرده شد. حالا یا صحبت جواب هم شبیه اینه. آنomanش کردند مقام بیان از این جهت مقام بیان هستن جهت حالا ممکن است ما تحلیل بکنیم بگیم بله، خب که به اسلام آیه به اون لحظه اول که کجای حیوان باشه اشاره نداره دومیش چرا چون آیه به هر حال یک مقدار ظهور عرفی داره و اون مقدار ظهور به عرفی حیوانی رو که سگ شکاری برای شما شکار کرد امسکنا علیکم میتونیم بگیرید حالا ما اگر برگشتیم به عرف از عرف سوال کردیم به خاطر آیا سگش فقط در عرب یا در اروپا اینجوری که راست تو خود ایران میگره شکارن چون من درش دیدم آیا این سگ شکاری وقتی شکارون کنه فقط 90 و شیش درصدش به این صورت که گلومی حیوان رو میگیره میترجیل می حیوانتن پاره میگیره پاره میکنه خون از حیوان میاد اون این حیوان میگیره آیا واقعا اینطوره اگر 90 95 درصد اینطور بود آیه به لحاظه اول هم اطلاق نداره چون آیه نظرت از به محروم و عرفی محروم عرفی چون ممکنه مورد پنج مورد پیش بیاد که مثلا سگ حمله کنه پای فلس و آهوره بکنه برای اصلا رفتن خون بمیره آمون این ممکنه اما بگیم نه اصولا در شکار این سگ شکاری میره گیر اما اگر آمده گفتیم نه در عرف کسانی که شکار شکاری نسبت نداره. یا می میگیره پاره می یا می گیره میکنه یا دیلو رو میگیره خفه میکنه یا رو پاره میکنه یا درسش میکنه همه جور شهر هست د همه جورش هست اینجور نیست که سگ شکاری فقد یک جور داره شکار رو می گیره چند جور دیگهش مثلا نادر باشه نه همه جور هست می رو میگیره فشار بره خفه میکنه دیلو رو میگیره پاره میکنه شکم می حیوان پاره میکنه کله حیوان میکوبه انواع مختلف برای شکار. هم. اگر شود اینجا تصوّر کنه اطلاق اشغال نداره. این چه مخدول کلام کلامه؟ این منظوریه که دیگه رو در نظر داشته. آها. حسین شب یعنی در حقیقت مروماهای خویا تا جواهر در این ارتکاز رفتند. چه بخواد در مقام اطلاهان اخلاقش قانون اساسی باشه یا قانون اساسی نداره. در این جایی چه سقم داره؟ وقتی میگه حیوانی که شکار شده خوب رفتار بکنید این تسکیه هست. با شکار هم واقع میشه. فرض کنید شکار هم در عفت چند جوره گیرورو پاره میکنه خون میده از اینجورو پاره هم بره حفش میکنه شکره میشه پاره میکنه پاش گاز میزنه پاشه جدا میکنه خون از اینجور می داره میمیره فرض کنه تمام اینها در عفت شکاره اون اگر گفتیم آیش شاملی اینها میشه بحث مقام بیانی هربانی این مدیول خود کلامه و کار به این رو قانون اصاسی باشی این مقدار رو میگیره. اما مسئله تهاره یه نجاست رو اگر مسئله تهاره سه این امره تعبودی شاره حکم میکنه این تهاره بگذر این شارهه که میگه این نجسته این پاکه ولی زیاده مثلا میگه خون نجسته پرس کنیم چرکی که میگه پاکه شراب نجسته سرکه پاکه شراب تا شراب نجسته سرک پس این میشه تعبود اگر شو تعبود اون متن قانونی و امور تعبودی نظر نداره زیرا م... خب زرافت کار روشن شد اون متن قانونی به امور تعبودی اینه که مثلا آیتوی میفونیم در مقام دارن جد نیست به نظر ما تو مقام بیان من نبودن این مخاطبی نبیجه بگیرم اینا قابل تحلیلن این طور نیست شبیه ادعا باشه آیا خیلی از این جهت دخمه هم بیام از اون جهت که ما صورت از اون جهت مخه هم بیام میزیم. این نمیشه با که یک شهید که از این جهت هست، از اون جهت نیست ای ما کار را انجام می اینها زوابتی داره برای فهم قانونی، اولا برای فهم لذی، برای فهم ارثی و بعد برای فهم قانونی. این زوابت ما سعی در این نکته به لحاظ این نقطه. شامل میشه یا به تحبیر ایشون به این, دا... این نقطه در مقام بیان هست به بی این نقطه در مقام بیان در اینجا پس ما یک راه دیگه رسیم خلاصش این شد که شناخت این که در این جرد به در مقام بیان از اون جرد هست این رو نمیشه با همین اصل کلی که در کلمه زاد. اصل اولی این اصل متکلم در مقام بیان هست. اصل نمیتونه شدی کارگوشا باشید اون که میتونه کارگوشا باشه تحلیل و مراجعه به شوابید و گرفی. یا به اصطلاح دیگر شما با اصل در حقیقت خودتون رو از یک مشکل نجات بگیم مشکل ایمیتونه حل بکنیم اما اصل نمیتونه برای شما رو درست بکنه یا به این مدنه یا برای شما کشف واقع و تمام مراض بکنه به مدنه ما باید به دنبال ای که از این دو حرف باشیم یا کشف یا وجود حجت به معنای مایه سهل احتجار شده با این عصرها کاره نمیشه انجام داد. و هر دو چه کشف مراد چه حجت، خب کنید. یک نکته اساسیش انعقاد ظهوره یعنی ظهور باید منعقل بشه تا به انعقاد ظهور نرسه نه کشف مراد میکنه نه حجت درست میکنه شما با اصل میگید بله این ظاهرشی در مقام بیانه دستیار با این اصل اگر به حد ظهور رسی اون ظهور حجیت اگر به حد ظهور نرسید، میگه من نمیدونم تو مقام باید هست اصل. اصلش اینه اما هیچی برای من روشن نیست. اگر روشن نیست، حجیت هم داره پس پنابراین این نکاس و خود در کنید با این اصول نمیشه کاریم این اصول ما بایدش تمسطی میکنیم. اما تمستا که به اصول باید, باید معدی بشه به این نوع انعقاد ظهور و غرفی باید این جرد یکیه فهم میکنه چه مستقه کش چه مستقه حجیه ما باید درستیم به مرحله انعقاد ظهور اما اینکه که اصل این هست که متقدم در مقام بیان باشه. خیلی خوب این اصل به خودش لیکن ما معتقدیم اغلا همچه اصلی رو که در این موارد ممکن است اوغلهای اساس حقیقه داشته باشند که در اما در موارد قانونی دقیقاً چون تو موارد قانونی دنبال حجت به اتهجار و عقوبت و جذاب و آثار داره اون آثار به حد ظهور نرسه آثار متراتب نخواهد شد این نکات تنبیری این مقاله یک مشکلی اصولا در دنیای فقر داریم ما گاهی اوقات که در این مسئله گیر میکنیم سعی میکنیم با یک صورت ذهن و او خودساخته مشکل رو حل بکنیم های ذهنی خودساخته ما نمیتوانند کاشف از واقع باشند و نمیتوانند به عنوان هجت قرار بگیرند مگر خود مقنن رو قرار بده ولا فینفسه نمیتواند سر اینکه قیاس هم در روایات ما قبول نشده همینه من توضیح دادم حقیقت قیاس این بود که در یک موردی ما حکم نداریم در پنشیش مورد دیگه حکم داریم مثلا یک جا حکمش این یک جا این موردی که حکم نداریم ملحق به کدو یکی بکنی. یک مشتریت میگوام من فکر مپرم شواهد سوزان می با مورد علف مرحله شد بیگو کنم شواهد سوزان می که با مورد بمارحله شد اونا می کنیم مثلا اهل حج مرادشون از قیاس اینه و می گوستن اشتهاد قجته مرادشون از قجته اشتهاد اینه. یعنی نه اینکه که هر کسی آمد بر ما این قطع رو از اون مورد می فهمیم. نه این باید باشه تا محرکه اشتهاد و قدرت اشتهاد ده باشه اون حبس او ارزش نداره ارزش قانون نداره اگر مشهر بود فقیر بود مشهر بود و اهل خبر بود ولو اگر مثلاً زن به طبق تفریرش، اون فکر این مال میشه جایزه. با اون پس جاییدی. یک فریقی یا یک رئیس در نخیاس کرد، گفت این ملاحظ میشه با اون جایید نیست. خوب خودکار بگوییم. اینا آماده گفتن هر کدام از این آرا با بودجه. اینی که شماش میذیست هستی به ولایت شدن این بود. ما خواست در هستی اشعری که یک خوب که این مسئله مفروضانه آن هست که نیست. چون مسئله قیاس داره اساسا از عهد صحابه شروع شد در نظر ما نمیتونی بگیم مفروغان انحق و نیست ما الان نمیتونیم بگیم روایت بدون ما نرسیبیم اما اصل مسئله قیاس عهد صحابه شروع شد اونا بیادم نمیتونی کسی از صحابه چیز از فرمان برشنی کنون هم که محروضه معیله پس نمیتونی بگیم این حکمیست حالا کنید چکار بگم فرص کنگونده در حد زنا هست حد سرقت هست حد غص هست حد و مصرف الارض هست اما حد خمر نیست چکار بگنیم بعضی از کفارات در برآن هست کفاره افتار توی مهرموندان نیست یا بیا داریم مثلا پیغمبر گفته این رو نمیدونیم این ستار مرتب. در برآن کفاری مرتب هست اینا بیامدن بگفتن حالا که در قرآن نیست بیاییم مثلا حضر شبه و ملحب بکنیم به زنا هشتاد تازی آنه اون بیامدن گفتن ملحب باشد بیم و حضر هشتاد این اسمش بود اسمش خیاس بود کرد اون وقت اینا بیامدن بگفتن اگر مشته بود و با اون خبرقیت علمیش به این نتیجه رسید حکمش برای ما بود اگر مشته نبود نیست از بابیه شده اصلا مطلب چیه. پس در حقیقت در اینجور موارد اگر دقت بکنید ما یه چیزی کاشفه از واقع نداریم چیز و قیابسیز که شخص انجام رو من ارز کردم اینجور چیزها هجیت شرعا و حقلا واضح نیست در قوانین چنین چیزهایی هجیتش روشن است. اون روایاتی که عن السنه لی به بهنظر من معناش همینه اگر برا شد سنن رو شما با قیاس بیاری این ذهنیت شماست خبرویت شماست نه حکم علهی شما باید دنبال حکم علهی باشید یا حجت برش داشته باشید یا کاشف بعد اگر شعاره آمد گفت این رو من قبول کردم میشه قبول جن اگر کاشف نوعی نبول میشه بوجه. اگر کاشفم در موالی ترش نکرد میشه قبول جن قبول اما اگر شعاره نگفت بیایی شما که من این روی به ذهنم این کافی نیست پس بنابراین اینی که شما بیاییم اینجا مثلا اطلاق داره اینجا اطلاق نداره این گفتار شما فقط این مشکلی علمی شما را حل میکنه کش از واقع نمیکنه یا برای وجیت لا لایسته برای بیان حجیت سالتالیت نداره پس این که ما بگیم اصل این است که متکلم در مقام بیانه اگر واقعا شواهد تایید کردین اصل و نیست اگر شواهد تایید نکرد انصافا چین چیزی ثابت نیست پس یک ما موردی باید دررسیب کنیم مثلا آیا اطلاقات کتاب جوریه که میشه به شجوع کرد یا نه اطلاقات کتاب و فرق دو یک دلیل ممکن است به این نکته ای که آن و بحس اینه در حقیقت یک دلیل ممکن است اطلاق یک لحاظ برش منعقد بشه به یک لحاظ نه این باید تحلیل بشه برسه به حد ظهور به مجرد شرک در مقام بیانه این کافی نیست با حد انقاط ظهور برسه سه برای عدم قرینه باید نسان دلیل با این مورد مشکل که ما اتحاد داشته باشند. اگر ما شک کردیم فکر قلوم ما هم سطنه که این از داره یا نبیدیم نه نجاست داره با اون دلیلی که میگه در ولوه سن هفت بار باید شسته بشه یه بار با خواهد یا سه بار به روایات ما یه بار با خواهد بکیم اون روایت شاره این آیه است و کلوم ما همسکنه سکنه اینکه این که سه بار یا هفت بار شستیم قلیه اونه جواب انصافا جمع بین دوتا ماده قانونی با اتحاد موضوع ممکنه اما اگر دو موضوع اجود باشه رفتی به هم نداره اون ماله بلوغ کرده این به رفتی آه، مثل که رو گرفتن مهمه که شما سایه رو در نظر می دیگه بقیه چیزها رو ملاحظه نکرده خب شگ افکام متعرض داره این نجاستی شی ای که فرستون مثلا بعضی‌ها توی فقهای ما هستن قاره مثلا خلطوش بیخ نه جایز نیست انقپا جایز در مخلفوش افکام مختصی داره اگر از دهن در غلوه مونم غلوه اینا اگر زبانش به ترش زد لازم لازم ترش با رو یا اضافه لقل کلم فی انا اهلکم داریم مخصوصا من سابره بحث نام شده از کل در انا ست تصور هستونی باید روشن نمید در کلمات اصحاب من روشن یک تصور انا هر چیزی که زرف باشه و مراد از زرف هر چیزی که به پروانده یک چیزی در خودش نگه بداره بزنی که ازش بریده مثلا یک اینه میتونی شما توش آب بریدین آب نریده این میش داشبرد ماشین نگار بدونی مش آفتریزی نندید این میشه زرد اصطلاحاً این هر چیزی که مایه ای درش بریزید و اون مایه ازش خارش نشه این میان زرد احتمال دوم است. انا مطلب چیزی باشه که انسان درش غذا میخوره یا آب میخوره چون خب هر چیز مثلا سینی برای آب خوردن برای غذا خوردن نیست برای آب خوردن است نیوان برای آب خوردن است برای هر چیزی یک حسابی داره احتمال سوم انا خصوص معروض دل شعر و لذا اگر سرچو سینی هم ولوخ کرد اون هم سه بار واجب نید چون سینی انا نید سه معنا در انا هست مثل مرحوم صاحب قربه انا رو زرب صاحب رو جواده انا رو زرب گیرسه مثلا چون این قابل اینه اگر سرده هنزد این سه بار واجب شده بشینه آب آب تو آبکش ها چیلی ها، میزوید آبکش تو نگه میمینه و موضوعی شوهی دیگه, دیگه, دیگه, دیگه. در جذب نگه نداشتن از زبت فرمولی یا تو آبکش مقالیشون زرون زر بنابراین حساب نه اینا حساب میشه نه زر چه آب تویشون میمونه اما شبشش نگاه بیمونه مثل زر ممونه برای از این به فرق بکنیم این نگه میگه خلاصه بحث یک بحث در حقیقت کتاب و کتابه. دو بحث در این است که باید اون دلیلی که ما خود که اطلاعش بکنیم اون حیثیات رو در نظر بیدیم و این حیثیات رو باید با تحلیل ارائه بدیم مثل همین تقلیلی که من آن ارائه دوندم سه راجع به این ای که هست این است که متکلیم در مقام بیان باشه اگه به حد ظهور رسید قبوله به الله فلا تقلیمه هم شرایطش گفته شد